به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان این بار دختر معتلائی روایت دختر معتلائی از قصه های جادو و جن و پری است در قصه های ایرانی پیر زنان بیشتر نقش ضد قهرمان دارند تا پیر مردان این که این انتخاب برچه مبنایی است می تواند مورد مطالعه قرار گیرد در روایت دختر مطلعی نیز ضد قهرمان است جادوگر که قهرمان قصه را در قلعه بلند زندانی می کند یکی از مشخصات قلعه ها و قصرهای جادویی قصه ها این است که در و راه ورود ندارد و قهرمان قصه باید گیسوی بلند دختر را بگیرد و بالا برود و خود را به او برساند. یاور قهرمان قصه یک پیرمرد است که بینایی از دست رفته قهرمان را به او باز میگرداند. البته از این بینا شدن میتوان تعبیری سمبولیک نیز به دست داد. متن کامل روایت دختر متلائی را می نویسیم. و من شما رو به شنیدن اون دعوت میمونم. یه و یه روزگاری زن و شوهری زندگی میکردن که خیلی فقیر بودند. بچه هم نداشتن. عاقبت بعد از سالها به خواست خدا زن باردار شد. تو همسایگی اونها پیرزن جادوگری زندگی میکرد که خونش پر از سبزیجات و درختان میوه بود. یک روز زن باردار هوس سبزی کرد و به شوهرش گفت برو از باغ پیرزن برام سبزی بیار مرد گفت تو که میدونی این جادوگر چیزی به کسی نمیده زن گفت من این چیزا سرم نمیشه اگه منو دوست داری باید هر طور شده برام سبزی تازه بیاری مرد که چاره دیگه این نداشت رفت که از پیرزن سبزی بگیره اما پیرزن اونجا نبود خودش مقداری سبزی چید و به خونه برگشت مدتی بعد دوباره زنش حوث سبزی تازه کرد مرد مثل دفعه قبل به باغ جادوگر رفت و چون کسی اونجا نبود باز خودش شروع کرد به چیدن سبزی در همین حیل ناگهان خنده وحشتناکی شنید وقتی برگشت دید جادوگر پشت سرش ایستاده مرد دستپاچه شده بود نمیدونست چیکار کنه که پیرزن گفت با اجازه کی اومدی تو باغ من سبزی میچینی مرد گفت آخه زنم بچه دار شده و سبزی حبس کرده من اومدم از شما سبزی بگیرم کسی اینجا نبود مجبور شدم خودم بچینم پیرزن جادوگر با شنیدن حرفهای های مرد نیشخم زد و گفت عجب پس قراره بچه دار بشید چه خوب اما باید زنت رو با بچه ای که تو شکم داره به سنگ تبدیل کنم تا دیگه از این حوث ها نکنه مرد شروع کرد به التماس کردن جادوگر گفت فقط به یه شرط تو رو میبخشم و اجازه میدم که سبزی بچینی مرد گفت هر شرطی باشه میپذیرم جادوگر گفت شرط من اینه که وقتی بچه به دنیا اومد اونو به من بدید مرد که به هیچ وجه فکر کرد جادوگر یه همچین تقاضایی داشته باشه گفت آخه همه امید ما به این بچه است جادوگر با عصبانیت بهش گفت آخه بی آخه یا بچه رو به من میدی یا همه تونو از بین می‌برم مرد از روی ناچاری قبول کرد اما پیش خودش فکر کرد که وقتی بچه به دنیا اومد از اینجا کوچ میکنیم و میریم یه جای دیگه که دست جادوگر به ما نرسه خلاصه اون رو سبزی ها رو از پیر زن گرفت و رفت چند ماهی گذشت تا اینکه یه روز زنش یک دختر ناز به دنیا آورد که موهاش تلائی اسمش رو هم موتلا گذاشتن هنوز یکی دو روز از تولد موتلا نگذشته بود که پیرزن جادوگر اومد و بچه رو گرفت و برد پدر و مادر که هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد شب و روز گریه می کردن. اونقدر گریه کردند و غصه خوردن که دخ کردند و مردند سالها گذشت و دختر موطلایی تو خونه پیرزن رشد کرد و روز به روز بزرگتر و زیباتر میشد جادوگر اونو توی قلعه بلند زندونی کرده بود و روزی یه بار از قلعه بالا می رفت و براش غذا می برد کم کم موهای طلایی و زیبای دختر اونقدر بلند شد که دیگه پیرزن برای بالا رفتن از نردبون استفاده نمی کرد. پایین قلعه و دختر صدا میزد اونم موهاش رو از پنجره اتاق آویزون می کرد و پیرزن موهای دختر را می گرفت و بالا می رفت و باز به همین وسیله پایین میومد. یه روز که پیرزن جادوگر میخواست از قلعه بالا بره اتفاقا پسر پادشاه از اونجا رد می شد. با دیدن پیرزن بهش مشکوک شد. پسر پادشاه یه گوشهی رفت و پیرزن رو در نظر گرفت. دید پیرزن سه بار صدا زد موتلا من اومدم. بعد دختر زیبایی کنار پنجره می اومد و موهاشو از پنجره بیرون میریخت و پیرزن موهای اونو میگرفت و بالا. بعد از یه مدتی باز موهای اونو میگرفت و پایین می اومد. جوون سب کرد تا پیرزن از اونجا دور شد. وقتی پیرزن رفت شاهزاده پای دیوار اومد و دختر رو صدا زد. دختر که از تنهایی خسته شده بود موهاشو آویزون کرد جوونم موهاشو گرفت و بالا رد. وقتی شاهزاده بالای قلعه رسید تازه متلا فهمید که چه کار خطرناکی کرده چون اگه جادوگر خبردار میشد هردوی اونها رو میکشت وحشت زده به جوون گفت اگه زندگی تو دوست داری برگرد و برو اگه جادوگر بیاد تو رو میکشه. شاهزاده گفت منظورت همین پیرزنه؟ دختر گفت بله همین پیرزن به ظاهر ناتوان یه جادوگر بد جنسه شاهزاده گفت پس تو اینجا چه میکنی موتلا تمام سرگذشتش رو برای شاهزاده تعریف کرد هم خودش رو معرفی کرد و گفت نگران نباش من الان میرم ولی اینو بدون که حتما برمیگردم و تو رو نجات میدم وقتی پیرزن برگشت موتلا از ترس ماجرای اومدن شاهزاده رو بهش گفت جادوگر موطلا رو کتک سختی زد و موهاش رو برید بعد هم اونو توی اتاقی زندانی کرد خودش موهای دختر رو به دست گرفت و منتظر شد که شاهزاده برگرده وقتی شاهزاده برگشت و دختر رو صدا زد پیرزن موها رو از پنجره آویزون کرد جوان هم موها رو گرفت و بالا رفت خوب که بالا رفت پیرزن موها رو رها کرد و شاهزاده از اون بالا افتاد پایین و بر اثر ضربه نابینا شد اما با اینکه نمی نمیدید و دست و پاش زخمی شده بود به هر زحمتی بود خودشو به قصر رسوند پادشاه که از نابینا شدن پسرش خیلی ناراحت شده بود همه ی حکیم ها رو برای مداوای اون جمع کرد. اما هیچ کدوم نتونه رو درمان کنن. مدت ها گذشت تا اینکه یه روز پیر مردی به شهر وارد شد و ادعا کرد که میتونه شاهزاده رو معالجه کنه. مهمورای پادشاه اونو به قصر بردن. پیرمرد فورا دست به کار شد و یه انگشتر به دست شاهزاده کرد و سنگ تلسم به چشم هاش کشید و شاهزاده بیناییش رو به دست آورد. پادشاه و همه اطرافیان از این موضوع خوشحال شدند و جشن بزرگی به انداختند بعد از چند روز شاهزاده، آب و آزوقه و وسایل لازم رو برداشت و به سراغ پیرزن جادوگر رفت. وقتی وارد قلعه شد پیرزن همه چیز فهمید و فرار کرد. اما شاهزاده دنبالش کرد. جادوگر وقتی دید چیزی نمونده که شاهزاده بهش برسه اساش رو به زمین کوبید و ناگهان یک اجدهای بزرگ جلوی شاهزاده ظاهر شد. شاهزاده با اجده گلاویز شد و با دلاوری جنگید و اجده را رو کشت بعد به جستجوی پیرزن پرداخت و اونو در حالی که داشت از قلعه بیرون میرفت با یه ضربه شمشیر نابود کرد بعد از نابود کردن جادوگر شاهزاده به دنبال متلا گشت و سپس در هفت بند قلعه اونو در حالی که بیهوش شده بود پیدا کرد و به قصر برد حکیم‌های دربار به مداوای موتلا پرداختن و بعد از یه مدت کوتاهی حال اون کاملا خوب شد سرانجام شاهزاده که عاشق این دختر شده بود از پدر خودش خواست که اجازه بده که اون با موتلا عروسی کنه پادشاه هم موافقت کرد و اون دو زندگی خوبی رو با هم آغاز کردند دختر معتلائی افسانه های چهار محال و بختیاری صفحه 145 علی آسمند و حسین خسروی انتشارات ایل چاپ اول 1377 شنوندگان عزیزم، امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و منو در داستان بعدی هم همراهی کنید همه شما رو به خدای مهربان می سپرم. سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها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 در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسان صوتی